شبهت این جلسه درباره عشق و آن روی سکه عشق نی نفرت و کین و است و این موزله عشق و نفرت هم واضحه که مهبر تمام مسایل عاطفی افراد بشری بوده بخست از این لازی هرگز در توی تاریخ قدیم موزده طبیل به یک محور و شعار درجه یک که بشر نشده شعار درجه که بشر موزه کافر و مومن و بادین و مذهب و شرقی و غربی و پولار و پول ببینی صحبت به سر هرچی میشه پای عشق و وسط میکشونه هرگز در تاریخ سب نشده که همچین وضعی لازم فرهنگی و کلامی پدید اومده باشه از هر چیگه که از مخصوبات کنن اسم کنه به وسط کشوندن عشقی که میتونه مثلا رو حل کنه به خودش به خودش رو توجیه کنه نظر میسته که گویا هیچ واجهی مثل عشق و هیچ معنایی مثل عشق توجیه کننده بشر نیست و بشر امروزی که به قایت ها و فوچی ها و ابتزاز ها و عذاب ها رسیده از زمان احساس میکنه که فقط با اتکای به این واژه است که میتونه این همه بدبختی ها و فوچی ها و های خودش رو توجیه کنه مرحیم بگذاره و حتی تقدیس کنه حتی جنون ها و جنایت های خودش رو هم تقدیس کنه ما بارها گفتیم امروز اگر شما برید توی زندان ها یه بزهکاری و تبهکار از هر کسیرسید چرا به این روز افتادی در زندان چه میکنی چرا حفتسه اوبدی چرا معکوم به ادامی؟ چرا این جرم مجا کردی داستان که تعریف کنه آخره سری میکشونه به تا دا داستان ش بود منتون عاشق بودم کارم به اینجا رسید. خب من چ عاشق بودم کارم به اینجا رسید پس اگر کارم به اینجا رسیده پس چیه ایننم عشقه و بعض از دامن تقصیری ندارم خب پس از همین یک نمونه ما میفهمیم که اهمیت فهم این واقعی که اسمش عشقه چقدر اساسی هست از طرف دیگری واژه و معنای دیگری داریم که اسمش نفرت کینه است انتقام اداوته که به نظر می در نقطه مقابل عشق و محبت و عاطفه قرار داره و خب این رو هم میتونیم ما درک کنیم که هر جا که کینه و نفرت تو انتقامی هست یه مقدار پروندهشو رو براغذانیم به قبل برگردیم میبینیم صحبت بر سر عشق و انسانیت و حیسار و عاطفه بوده و هر جا که این ادعای عاشقان شدیدتر بوده سریتر شدیدترین نفرت ها و کینه و انتقام ها تا سرحد جنون و جنایه دستوش عاشقان شده پرواندگر ما باستی بگیم که عشق و نفرد علت و معلول هم دیگه هستند نفرد و کین و انتقام نتیجه طبیعیه این چیزیه که بشر اسمش رو عشق و عیسار گذاشته پس اینا دو چیز نیستند دو چیز متوابط نیستند دو چیز متضاد نیستند ادامه طبیعی هم دیگه هستند یعنی نفرت ادامه طبیعی آن است که بشر اسمش رو عشق گذاشته خوب از ما می بینیم که بسیاری و بلکه اصلا تربا همه حکیمان و عارفان و خردمندان و فرزانگان و بلکه انبیاء و اولیا در طول تاریخ تا به امروز آدی ترین مقام معنوی رو برای عشق قرار دادن بسیاری از حکیمان و عارفان علنا خدا رو برابر با عشق قرار دادن یعنی متقدن که عشق همان خداست خدا عاشق نیست خدا مشهور نیست بلکه خود اشک خدا ببین تا این حد. از این طرف این حد تعالی و قدسی برای عشق وجود داره در کلم روی ادبیات و حکمت و فلسفه اینها از طرفی دیگر ما می‌بینیم این اشک خودش مهد پرورش اشد شغاوت ها و اداوت ها و تبایی ها و عذاب هاست و اینم واضحه که عذابهایی که از بطن این عشق و ها و دعوی های عاشقانه بشر در اومده اشد عذابه هاست به نظر بنده اون عذابه ناری که در قرآن اومده عذابه برخواسته از عشقه عذابه نار همون آتش عشقه این نار همون آتش عشقه این عشقی که بشر آمی باش و کار داره در این حال ما با یک تضاد اونگار طرفیم از این طرف انبیاء و اولیاء عشق رو قلم روی کمال لطافت طب انسان کمال معنویت روحانیت آرامش قرار عزت و عین بهشت میدونند اونا این دو تغییف و از طرفی در قلم روی فرهنگ عامه بشر امروز در قلم می بیونیم که این عشق قلم رویه این عشق اونگار خود کارخونه عذاب و جهنم انگار و هرچه شبابت و پدیدی و توجیه تبکاری هست ها از غلب رو این چیز که اسمش اشخ در میاد داره خب این خیلی تضاده عظیمیه شاید تضادی بزرگتر از این در غلب رو فرهنگ ما نداشته باشیم خب حرف بسیار بزرگی و در این حال یک سوشه معرفتی تخصصی و کتابی و اکادمیک نیست بلکه عالم و همه مفتلا به این مفتلاه هستند. خب این چی واقعا؟ خب تا همینجا ما اومدیم در واقع اهمیت مسئله رو روشن کردیم که اهمیتش واضح حالا بیانیم مقدر خود صورت مسئله رو خاناتر و واضح سر کنیم یعنی بیانیم واقعا اش رو کمی در قلم رو محسوسات بشری تریف کنیم اش رو از متافیزیک و تعریف عارفانه بیاریم با این مداز زمینیترش کنیم ببینیم و از یک باید گفت که عشق عبارت است از شدیدترین علایق امیال آرزوها و نیازهای بشر هر نیاز و میل آرزویی که خیلی در انسان شدید باشه بتونه تمام وجود انسان رو بسیج کنه به اون میگن عشق هر آرزویی هر اساسی که بتونه تمام وجود رو بسیج کنه، تمام احساب و ادراک و هوش و حواس و کردار و رفتار و خواب و بیداری انسان رو بتونه بر محور خودش بسیج کنه به اون میگن عشق به اون چیز. خب حالا عشق مثلا فرس کن به جنس مخالف یکیشه مثلا عشق به هنر واسه اون موضوع مثلا عشق به علم خب حالا در قدم رو حکمت عشق به خدا مسئله بوده خب اینو انواع موضوعات عشق هستند خب ما میدونیم یکی از اشقهای رایج جانبه بشری عشق به پول اندوزی و عشق به قدرت از یه دلاز باستی گفتش که یکی از عمومیترین و همجایی ترین و قدیمی ترین اشقها عشق، عشق به قدرت بوده از جمله های دیگر اشقه اشق به محبوبیت عشق به مشهور شدن عشق به جلب توجه دیگران کردن اینا هم با اخسام موضوعات مادی و معنوی اشقه با اشقه مادی داریم اشقه های معنوی هم داریم ام باقستانش خب از طرفی مثلا خب میبینیم اشقه به تکنولوژی خودش که از اشقه های مدرنه واقعا افسون و جازبهی تکنولوژی برای بشر امروز داره که بایستی اسمشو اشق بوداشت ببینیم ما اگر گفتیم عشق اشق به چیزی عبارت است از وضعیتی که تمام انرژی وجودی هر کسی رو بر مدار خودش بسیج کنه بنابراین بر هر موضوعی بتونه شدیدتر وجود انسان رو بسیج کنه بر میبر خودش در واقع میشه گفت در اونجا اشق وجود داره عشق به چیزی خب بنابراین ما در اینجا مواجه با موضوعات بسیار متنوه هستیم سوژه های عشق خب از که به سوژه های عشق برسیم به تر کمی خود عشق برسیم تر کمی واضح کنیم برای همین وقتی از اختوبت میشه همیشه سخن بر سر اشق به چیزی هست عشق ب خب اگر یکی من عاشقم یا عاشق چی هست که اصلا غب حمیز نمیدونم یه ای این است؟ هست همانه معبول نیست مفهوم نیست همچنین عشقی رو دربان بشر نمیدونه حسقونه و اصلا برای خودش تداییی داشته باشه خب برس همین همچه عاشق میشه گفت عشق نی... نیاز شدید و عشد نیاز ها تا سرحدی که کل انرژی حیاتی یک بشر رو و تمام آگاهی و اراده و ناخودآگاه آگاه و قرائز همه امیال و حباست انسان رو بتونه به شدتی که متحد کنه بر یک مداری اون وضعیه وضعیت عاشقان است بر مدار چه موضوعی چه کسی چه چیزی فعلا با این قسمت کاری نداری خب نا همینجا میشه شاید این نتیجه که رو داشت که پس اگر عشق یعنی عشق به مثلا عشق به چیزی قیل از خوده نظر میگسیم خب آیا مثلا ما میتونه بگیم که انسان آشار خودشه میتونه خودش هم بازشه یعنی خود هر کسی یعنی هم میتونه یکی از سوجه های عشق باشه این خودش یک است، مسئله ایست, مثلا ایست. از این منظر اگر نگاه کنیم میبینیم که بر حسب ظاهر به نظر که این خیلی اهم است، اصلا خلاف واقعیت ده که انسان آشق خودش باشه انسان همیشه آشق چیزی در بیرون از خودش و غیر از خودش درسته انسان آشق آرزوها و عمیالی از خودش آرزوها و عمیالی که در بیرون حضور دارند و انسان میخواد به اونها برسه به چیزهایی در بیرون از خودش خود برسه. پس اگر چنینه که واقعا جینه از یه واقعا واسه که انسان واقعا عاشق خودشه. عاشق آرزوهای خودشه. عاشق آرزوهای خودشه. عاشق احساسات و تمناها و تصوراتی که از خودش است که این متجلی میشه در چیزهای در بیرون. خب این واقعا واقعیت هم داره. چرا؟ مثلا واسه مگه قید از اینه که یکی از ترین و شدیدترین و عمومیترین تجربه عاشقان بشر عشق به جنس مخالفه خب مردی عاشق زنیست خب و بعد خب ما میبینیم که به وسط زن می‌رسه. میرسه چه بس آن زن هم تماما تسلیم راده اون مرده مورید رادی اون مرده ولی میبینیم که به سرعت این مرد با اون زن به اون بس میرسه و بعد این همون مخواستم این که نوستا با من عوضی گرفتم باقی همینه که یک انسان جاهل به این که این معشوق خیانت کار از او در خیانت کرده ببین برای همینه که خیانت یکی از مسائل محوری همه اشخاص از اینجاست که اشخ به ناگاه 180 درجه طبیل به نفرت میشه شه ولی انسان به نظر از خود آب میکنه که آقا جان نه خب مگه اتقال کرد این من که در اکثر امور موافق من بوده اصلا اصلا عشق من مگه فقط وصالی با اون بوده خب رسیدم آقا دیگه بازر حسابم چیه اندهی قبلا با اشون قرار امضا دا ازا بودن که وقتی من به رسیدم اشون چی و چند باشه که خب، پس از همینجا میشه نهجی کرد که انسان واقعا عاشق خودش محشوق همیشه به همون است چه همسره؟ چه جنس مخالف، چه وصل قدرت، چه خنره، چه علم، چه سروتی اینا واقعا هم است است. چرا برای انسان وقتی بهش رسید تازه میفهمه که اون چیزی که او متصور بوده اون نیست. در این شکل نیست. آه. و چون می بینه که وقتی رسید و وصال به اون خواسته خودش اون چیزی که او در احساسش می پرورنده و انتظار داشته عذاب در نمیاد، به جای که خودش متقاعد کنه که آقا من عوضی گرفتم معشوقم متقاعد میکنه میگه معشوقش از کرازاب در اومده منو فریب داده ببین فریب خوردی یکی از مسائل اساسی چین هست هر عاشقی وقتی که به وصال رسید تازه احساس می‌کنه فریب خورده تا قبل از رسیدن به وصال که اساساً فریب خوردگی وجود نداره میگه آقا من ناخوامم شرایط اجازه نمیده من به وصال برسم وقتی رسید اساساً اون که فریب خورده ولی این فریب رو گردن ما شروع گردان خودش نمیندازه. نمیگه من عمل بودم. من خودم خودم رو فریب دادم. اینو ممکنو درات کسی میگه. میگه او منو فریب داد. لذا به اتومات میزنه اونو خائن میدونه اصلا اینجا نفرت شروع میشه. خب بنابراین واضحه که اگر میگیم نفرت ادامه طبیعیه عشق پس تو گو گفتش که نفرت ادامه طبیعی جهل انسان در خودشه. این جرد یک مسئله بیشتر نیست این که انسان میپنداره که عاشق چیزی غیر از خودشه واقعیت اینه که انسان عاشق خودش. اگر انسان این رو بدونه معرفت داشته و یادش نره هیچ وقت به این حساس فریب خیانت و تومت و لذاب نفرت و لذا به جنون و جنایت کشیده نمیشه انسان اگر بدون عاشق خودشه لذا هرگز بر محشوق منتی هم نمیگذاره در این منتی بر محشوق و انتظاراتی که انسان از محشوق داره قلمرو روی تفاهمات و ناکامی ها و فریب و خیانت و تهمت و عدالت و این خب پس این واضح، واضحه که انسان عاشق خودشه بله خب سوژه ها، ایده ها، آرزو ها، ها اینها. موضوعات مختلف عشق های بشور هست که البته او را در جاهای بیرون از خودش میکشانه به بهدیگه میشه گفت عشق همون مییررو انرژی هست که انسان رو از خودش به بیرون میکشه به پرستش غیر خودش میکشه. کشه حالان که انسان آاش خودش با بعض در واقع آنچه که شننابیده میشه تجربه عشق تجربه پرستش خیش در غیر خیش انسان خودش رو در غیر جستجو میکنه یعنی انسان احساس میکنه که روح خودش مدینی فاضله خودش آرمان خودش در غیر حضور داره و در اونجا میتونه به خودش برسه. بزفاده با مشروع در واقع اینه که انسان چنین احساس و چنین پندایی داره که میتونه خودش رو در غیر دریابه و به حق خودش برسه به وساده با خودش برسه و دیگه اصلا به خودش برسه پس اگر میگیم که عشق یعنی عشق به خود یعنی عشق رسیدن به خود واقعا نه چیزی از خود پس در واقع از عشق یعنی همانا رسیدن انسان به خودش در غیر خود به ساده با خود در غیر خود خب اگر چنینه که واقعا چنینه پس این نفیجه میشه گرفت که پس انسان موجودیست بیگانه از خود پس انسان معلوم خودش نیست دیگه دستش از خودش کتاست انسان پس ملوم در خودش از خودش بیگان است در خودش دستش به خودش نمیرسه در دیگران انسان میتونه دستش به خودش برسه و به خودش برسه و خودش بشه این مفهوم کاملا محسوسه اگر چنینه که باونم چنینه این نتیجه رو میشه گرفت پس این بدان معناست که انسان دوتاست نه؟ وقتی انسان تاب جستجوی وصال با خودشه فقط من دو تا سیگی یکی میخواد به وصال و یکی دیگه برسه درسته رضوانیمه انسان دو یک دوگانگی است ها این دوگانگی اینجوری میشه وصال من و خودم دو تسی خود و خود خودم خودم و خود خودم انسان این کار حس میکنه که در دیگری است که به خود خودش میرسه این قلام رو ببینش این هم یک نیاز و احساس ذاتی است. یعنی هیچ تصمیم نمیگیره که عاشق کسی یا چیزی بشه. مثلا این عشق نیست، این افتنه‌گر نیست، این توهته است، این رندی است، این هرزگی است. از این هرزگی‌هایی که لقب عشق رو خودشون می‌ذارن، البته تو دور زمانه کم نیست، رفقای فاصلبانه عشق نمای یا کم نیست، بیشتر دایره است مثلا اینه. ببین خوب اینو می‌خواستن ما اینجا یاد می‌گرفتیم این رندی این است این فساده این دامن‌داختنه من تظاهر میکنم که عاشق کسی هستم تا از طرف مقابلم بتونم استفاده بکنم یا سوءاستفاده جنسی بکنم یا جیبش خالی کنم یا هر بدایتش بیارم خب این شیطنت و فساد و فدیدی های آگاه آگاهانه است خب این خب معلومه که پیش می‌ره پیش این ما وقتی ما کردیم در چیزی ذاتی است برای همینه انسان نمیتونه الله زینی تصمیم بگیره که عاشق کسی یا یک چیزی بشه به احساس میکنه که عاشق کسی یا چیزی شده است و حاضر تمام هستی خودش در این را بگذاره تا به اون چیز مثلا برسیم پس واضح شد که انسان در درون خودش دوتاست یک دوم که انسان در درون خودش نمیتونه با خودش برسه اگر میتونست هرگز آشقه نمیشد اینم هم مطلب دفع با این مقدمه کلی که ما گفتیم حالا اگر سوالی مسئله نبتهی شما دارید میتونید مسئله خورید خیلی متشکرم از توزیاته خوب شماسته ببینید شما بحث رو در باب عشق مطرح کردید ولی به نظر میرسه که تماماً از دیدگاه یک عاشق صحبت کردید نه یک معشوق خب بله همطور که میگید عاشق موجودی است بیگانه از خود که میخواد در بیرون از خودش و در به با معشوق خودش که چیز غیر از خودشه با خودش به یگانگی برسه رسه خب ما میدونیم همیشه وقتی میگن آشق آشق حداقل در بیان تاریخی همیشه مردان عاشق بودند و زنان معشوق حالا اولا یه سوال من از شما اینه که اولا آیا این رو چقدر میپذیرید شما؟ آیا این فقط یک به صدا بیان تاریخی و یا یک ساخته و به ساخته و پرداخته مردم هست که مرد آشقه و زن و این یک به صدا ثابت نیست؟ اگر که چنین هست که خب اینو توضیح بدید و در این حال وضعیت یک معشوق رو هم توضیح بدید چون همطور که شما گفتید شما عاشق رو توضیح دادید خب یک معشوقی که به چنین در م... قبال چنین عشقی قرار میگیره در واقع چنین معشوقی که عشقی رو دریافت میکنه که گویی عشق دروغین بوده چون عاشق عاشق خودشه و مشوق در برهی از زمان مورد هدف این عشق قرار میگیره و بر اساس چنین هدفگیری دچار یک احساس رضایت بسیار شدیدی در خودش میشه. و به ناگاه عاشق با رفتار و کرداری به اون نشون میده که، اون بوتش نبوده و خودش عاشق خودش بوده و در اینجاست که مشروب در هم میشکنه و اگر همیشه معمولا زن به عنوان سنبول بیوفایی خیانت مطرح شده به خاطر چنین است که در مشروب اتفاق میفته حالا سوای این مشروب آیا این دوگانگی رو در خودش چگونه داره؟ اگر این دوگانگی اصلی مربوط به انسانیت و نه جنسیت نه آشق و منشوق یعنی هر بشری چنین دوگانگی رو داره من و خودم در منشوق این به چه روندی به یگانگی میرسه و چطور این رو تهیم میکنه؟ پس این مسئله رو توضیح بدید اولا وضعیت همتون که گفتم در تکرار میکنم مسئله عاشق و مشروع و اینکه آیا شما این رو قبول دارید که مرد عموما عاشقه و زن عموما مشروعه و اگر چنین هست این بر است دوست دواره و وضعیت مشروع رو هم از باب دوگانگی توضیح بدید سال بعدی من در ارتباط با کلن میخوام این رو از شما سوال بکنم که ارتباط عشق رو با غرایز برای ما توضیح بدید ببینید عموما ما میدونیم که وقتی صحبت از عشق بین دو انسان مطرحه بین دو جنس مخالف همیشه این عشق نمیتونه با غریزه جنسی و شهوت جنسی همراه نباشه و اصلا چنین عشقی اگر که عشقی بدون شهوت جنسی باشه اصلا گویه عشق نیست و اصلا قابل باور هم نیست یعنی هر معشوقی عشق عاشق خودش رو در شدت چنین به صلاح نسبت به خودش میتونه باور بکنه و در این حال خب ما میبینیم که از همین قضیه چه سو ای داره میشه الان ما میبینیم که آنچه که به در جهان امروز مطرح هست اینه که اکثر کسانی که واقعا تمام بودودشون حرزگی و فساد هست با بیان عشق چگونه فساد و عشق خودشون رو موجه میکنن با بیان که ما عاشق هستیم و همین که این عشق رو وسط میکشن اون هرزگی قداست پیدا میکنه خب یه طرف خوب به نظر میرسه که این دوتا با هم همراه ا عشقی بدون شهرت جنسی ممکن نیست همطور که شما گفتین اشق عشق قریزی از یه طرف ما می که خب بسیاری از هرزگی ها و یاشی و فساد ها این طوری مبجه میشه و اونها رو که حداقل میدونیم دروغه چطور این تیک اتفاق میفته و چطور اصلا میشه تفکیک کرد و یا چطور یک مرشخ میتونه این رو تفکیک بکنه حتی اگر یک مرشخ که مورد خطابه چنین عشقی قرار میگیره چطور واقعا بفهمه که آیا اون فردی که داره اون رو میگه من عاشق تو هستم آیا فقط ممسش یک شهوت زود گذره و مس که این شهوت برطرف بشه عشقش هم از میان میره تا که در امریکا معمودا بلافاصله این عشق از میان میره و یا اینکه نه واقعا عاشقه؟ این چه تفکیکی دار؟ سال بعدی من هم از شما اینه که آیا غیر از عشق قریزی ما میتونیم از عشق دیگری هم صحبت بکنیم؟ و یا در بشر فقط عشق قریزی وجود داره؟ آیا حالا من اینطور بخوام سوال بکنم؟ آیا فقط عشق، عشق هست که به نوعی میشه شو اپای تنهایی؟ ما یه ما عشقی رو داریم که بالاتنه باشه بدون این که ارتباطی به پایین تنه داشته باشه خب البته ما در جهان اسلام و در میان عرفای خودمون چنین عشقهایی رو بارها حداقل در تاریخ خودیم عشق بین مولانا و شمس خودش بیانی از چنین عشقی است حالا واقعا باید سال کرد که خب اولا این عشق های این ای ها عشق های عارفانه بگیم، عشق های بالاتنه ای اینها چگونه گونه است و یا چنین عشقی بین که زن و مرد امکان پذیره و یا فقط ما باید در طول تاریخ بین محدود افراد بشری یک همچین عشق بسیار متافیزیکی رو پیدا بکنیم و در یک چیز خیلی کمیابی است ممنون میشم من, می من این طلبی هاست رو به من بدید موچنگیر مرزا میرسه شما در میان انواع موضوعات عشق بر روی عشق جنسی گذاشتی که اساساً همون عشق به جنس مخالف باشه و این طبیعی هم هست برای اینکه شدیدترین و ترین، و قدیمیترین و جدیدترین این اشقها که سرنوشته افراد و جوابه تایینی کنه واقعا به جنسی مخالفه. بر حق هم هست چرا برای اینکه راز بروای انسان بر روی زمین رابطه آدم و هفوایی بوده دیگه راز بقاست اگر چیزی برتر از بقا و موجودیت انسان بر روی زمین برای بر انسان وجود نداره انسان اول باستی باشه, باشه بقا داشته باشه بعد حالا کار دیگری هم بکنه یعنی خود بودن من هست بر شدن اول بودن واجب شدن امری صلا سانویه اگر بودن امری واجبیست و شدن امری سانویه پس عشق جنسی هم عشق بودنیست پس فقط عشق جنسی کاذب هم نیست یعنی بر برای اینکه انسان اول باشی باشه بعد حالا ممن باشه کافر باشه صالح باشه خاله همه خلافکار باشه، عالم باشه، جاهل باشه، خوب باشه، بد باشه، چه کاره بشه، چه کاره نشه، بعدشه این رو هاست رو روشن هست، رشد و تعلیق. پس بودن مقدم است پر شدن. اگر بودن مقدم است، پس قرید جنسی هم اساسی ترین قید هاست لذا اشخاص جنسی هم بودنی ترین لذا بر پس توجه شما دو توجه بر هر کاملا درسته داریم. قبل از هر چیزی بازی این اشکال میشان که و این اشکال بازی فهمید. ولی قبل از اینکه بر برای این سوال شما وارد بشیم من یک زمینه کلی تایی توضیح بدم که این سوال شما واضیتر بشه باست بستر کلیش صحبت هم در جلساتی قبل داشتیم ما در قلم روی نیاز ها که اصلا نیاز چیه خب این بحثم ادامه تکاملی همون نیازه چون گفتیم اشد نیازها ها به صورت عشق بارد میشه و به فیل در میاد شریدترین نیاز ها همون و ترین نیازها. نیاز تار حدی که بتونه کل وجود رو بسیج کنه و تبدیل به یک هدف و جریان واحدی بکنه ما در آن صحبت وجود انسان رو اللازه همون موجودیت فیزیکی خودش به چهار مرحله و چهار قسمت تقسیم بندی کردیم. گفتیم انسان از روی همون حیکل خودش از سر تا پا قدم رو داره یکی شهوت پایین از پایین حد که بالاترش قریزه جنسی بالاترش دل یعنی دل... دل... آباطفه بازاترش هم سره یعنی قدم رو اندیشه و فکر. این چهار مرحله به عنوان چهار نوم نیاز یا چهار نوم قریضهی وجودی جنسی و شکمی دیگه بله زیرو شکمی،, شکمی آتفی و فکری خود چهار نوم نیازه بلدنیشه. خب بعضی میتونه چهار نوم چهار دسته عشقم باشه که البته این چهار نوم رو ما طبق فرهنگ کلامی بشر به دو دستهی با قول ما رو پایین تری و بالاتری دستیم کردیم نیازهای قلبی و ذهنی رو بالاتری و نیازهاشی که کم وزیرش کنیم را گفتیم اینها نیازها لغزشی پایین تری است پایین تری ما فکر بودنش نیست هرچی که پست داره سراغ اساسی داره زیر بنایی تره بالو بیشی تره در واقع اصولی تره چرا براون که اگر شکم وزیرش کنم نباشه اصلا حیاتو باقی بودنی نیست که دل و اندیشه اصلا بخاطر وجود داشته باشه بسی نگیم پستره این پایین داله داره بر تغییر نیست اتفاقا داله بر اهمیت موجودی تره خب این بس چار مرحله و چهار نو و چهار درجه از نیاز رو مندشون دادیم بس چار درجه و چهار نو کلی از عشق هم وجود داره عشق جنسی بیسیک ترین, ترین شه و بعد عشق شکمی که اساس محور عشق شکمی و شکم چورانی و شکم باریدی های انسان هست و شکمی که مربوط به خوردن هست، خوردن و آشامیدن هست. و بعد عشق عاطفی که عشق مربوط به جلب توجه و جلب محبت دیگرانه، یه چیز معنوی است، بس عشق فکری، عشق علمی و عشق معرفتی و از این دست که امباغسام باز داره، اینها به صورت چهار نیاز که اشدش میشه چهار نوع عشق. فیلم مثل عشق فکری داریم چرا نداریم؟ آدمهایی هستند که عاشق فکر خودشونن هم؟ خب این داریم دیگه داریم باید. و تمام عمرشون رو بر این محور قرار میدند خب این یک عشق بسیار انسانی تره انسان داریم که عاشق عواطف قلبی، رساسات قلبی خودشون هستن و تمام عمرشون بر این محور زندگی میکنند خب اینها این دو این دنوع انسانی تره این دو نوع پایین تنهی خوب مربوط به حیوانیت انسان میشه خب. انسان قبل از که انسان باشه حیوانه خب حیوان یعنی جاندار, جاندار. صاحب جان جاندار. ببین؟ این جان رو ما نمیخوان تغییر کنیم این دو یه وقتی چنین برداشتی نشه تا جان نباشه چیز دیگه ای نخواهد برداشت. خب بنابرای اگه نگاه کنیم در اینجا میبینیم که این چار نو و چار دریجه از نیاز و عشق به صورتی که تجربه میکنه و میتونه بفهمه چار نو سلسگری انسانه چار نو تسلط و اراده به تصرف و بلندگی و امارگی نفس انسانه مم. همون دوی در عشق جنسی اون انسان عاشق میخواد محشبو خودش رو جسمن و روحن در تصرف خودش در بیاره اصلا به کام رسیدگی یک عاشق که بتونه جسم و روح و اراده و تمامی ظاهر باطن مشغول خودش رو در یاد ارادی خودش در بیاره. به میگن انسانی به اصطلاح خوشبختی به کام رسیده. در قدم روی چنین تلاشی است که اون جناب عاشق در یک اولی های اولیه به نظر ولی در یک جاهایی ناموفق میشه و محشوق دیگه نمیخواد یا نمیتونه خودش تسلیمون بخونه و از همینجا دومت بی وفایی خیانت و نفرت آغاز میشه یکم بالاتر نیاز و عشق شکمی خب شکم بارمان و شکم میخوان تمام زمین و زمان و کائنات رو تبدیل به یک لغمه چرب بکنن و درست قرد بدن به خب این هم واضح و تصرف خب اشخاتفی هم،, هم این طور اونهایی که بر مدار احساسات و عواطف قلبی خودشون زیست میکنن میخوان می, ها؟ می همه رو تت و عواطف خودشون قرار بدن تت و احساسات خودشون قرار بدن فیلم مثل نگاه کنید، گروه هایی از بشریت بودن که امروز خیلی زیادن جماعتی مثلا شاعران و مثلا اهل هنر رو به طور هرسهی میشه در این رو قرار داد اینا با توسط به شعر و هنر و شعار و جلوهگری هنری هنری وق نظر ما رو به خود جلب کنند و هم رو تحت تاثیر خاطیفه خودشون قرار بدن ببین اینا بعضی نوعی سوسداست سوسیا تا حد بر عواطف بله تزلل بر عواطف و احساسات قلبی دیگه را ببین اینا بعضی نوعی دیگری از سوسد است از دانش فکری هم دوره آدمهایی که فکر خودشون رو میبرنستن علم خودشون میبرنستن در واقع میخوان از این طریق سایر افراد بشری رو تحت سلطه و فرمان فکر خودشون دارن میبرن و رهبری کنند در عشق به رهبریه رهبری فکری معنوی علمی دینی اتا فرق می کنه و چار نوع سستگیری و آدم است. این چار نوع عشق خب این کلیت رو ما به داشته باشیم خب باز برگردیم به صحبت قبلمون یک بار دیگه ما گفتیم که پس انسان در درون خودش دچار صنویت و دوانگیست و ذاتا میل به یگانگی داره پس خود این عشق اراده ذاتی و ناخودآگاه انسان به یگانه شدنه در خودش با خودش بله. ببین این جنبه های ارفانی و معنوی عشق معنای عرفانیشه ولی احساس میکنه خودش در خودش به خودی خود نمیتونه به این یگانگی برسه در چیزی کسی غیر از خود میخواد برسه و ما در این چهار نوع عشق نشون دادیم که مخاطب نهایی و هدف و شکار و سید نهایی هر چهار دسته از این عشق سایر انسان ها هستند عشق به ثروت هدف نیست ثروت برای اینکه آدم بتونه بخشی از آدم ها رو با واسطه ثروت تحت سلطه خودش داره بیاره تحت فرمان خودش داره بیاره صاحب بشه مالک تن و روح و بشه و از این طریق احساسه بکنه که به خودش رسیده و احساس وجود بکنه الله سلسه فکری هم میداره عشق هم میداره خود رابطه جنسی که قلمرو رو شدیدترین تجربه اتحاد عاشق با محشوق هست که الله جسمانی هم در آغوش گرفته میشه محشوق میل به یکی شدن با محشوقه و در اونجا طرف نمی با به محشوق یکی بیشه. در واقع در محشوق چیزی از خود الله داره که اسم میکنه در اونجا میتونه خودش بشه یکی بشه. ببینید پس اینجا واضحه که عشق لازم معرفتی ذاتن اراده به یقانه شدن با خود رو داره. این یقانه شدن با خود به معنای دیگری یعنی رسیدن به خود. رسیدنی به خود به یک معنای دیگری همان رسیدن به وجوده. این در واقع باسته گفتش که عشق ذاتا همان اراده به وجود یافتن خلق شدن و هستی مطلق و یکدانه شدنه این هستی مطلق و یکدانه اللازم عرفتی دینی یعنی خود خدا در واقع گفتش که از این دیدگاه فقط میشه گفتش که عشق همان واقعه اولوحیت و وعدانیت خداست زیرا خداست که یگانه است فقط زیرا خداست که هست، هستی ازلی و ابدی و مطلق و جاودانه است. یعنی زیرا فقط خود خداست که خودشه. این که میگیم احدیت صفت ذاتی خداست و هیچ کس در احدیتش شریک نیست، یعنی برای اینکه هیچ کس نیست، همه دوگانه اند. ببینید در اینجا احدیت عین موجودیته. در واقع اراده ای به وصال با, با معشوق برای عاشق. اراده به وجود یافتن هستی یافتن خوب این لازه مرفتی دینی هم درسته انسان خودش به خودی خود از عدمه و درقل امروه به هستی قرار گرفته تا هستی بیاد. این تنه ما این موجودی فیزیکی ما هستی ما نیست ظاهرانه معلومه اصلا هستی ما نیست از جای دیگری آمده بعدش هم میره تو خاک ببین پس این هستی نیست این یک تجربه ای کتا مدت از است. هستی رو فقط چشیدن و بوییدن خود هستی نیست انسان به میزان که هستی رو میچشه تازه میفهمه که نیست بابا مثل این که یه فکری به حال خودش بکنه بایست یه هستی رو بیابه این تن واسه آدم با قول نونه آب هستی نمیشه این تن را نیست اینو به تدریش به تجربه انسان در میابه برای میگن میگن مرگ عشقه این ترسی از مرگی که انسان رو ذاتن آشق میکنه کنه این هم واقعیت دیگریست این ترس از مرگ نه فقط از فلسفی یا ذهنی اصلا این ترس از مرگ در تار و پوت و اعضا و جواره و در جنهای انسان و در تجربه آگاهی انسان هم حضور داره از این لازم میگن عشق محصوله وحشت انسان از مرگونیست که است این هم درسته این واقعیته